سلام دوستان همراه کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه از کتابی که مشخصاتش ذکر شد داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام جوانی با چشمان باز یکی بود یکی نبود مرد جوانی بود که هرگز لذت شادمانی رو نچشیده بود اون همیشه میخواست از هر چیزی سر در بیاره چیزایی که دیگر افراد توجهی به اونا نشون نمیدادن پس از اینکه زبون بز و گاو و دیگر جانداران رو آموخت، از سر اتفاق متوجه شد که چیزای زیادی تو تاریکی شب نهفته است که چشمای میرا هرگز اونا رو در نمیابه. از اون لحظه به بعد این فکر به سرش زد تا زمانی که از این رازای نهفته سر در نیاره آروم و قرار نخواهد داشت. به سر تمام وقت خود را صرف فراگیری این رموز کرد و از نزد جادوگری نزد جادوگر دیگه ای رفت و از اونا خواست تا به اون چشمای باز بدن. البته هیچ یک از جادوگرها کمکی به اون نکردن. سرانجام به خدمت جادوگری پیر پیرو کهانکار به نام ماتا در اومد. اون در آموزش رموز سرآمد همه جادوگرا بود و میتونست خواسته یه جوانو برآورده سازه. جادوگر پیر با دقت به حرفهای جوون گوش داد. بعد با هشدار به اون گفت پسرم دنبال دانش توخاری نباش چون که برات خوشبختی نمیاره و تو رو به مصیبت میندازه. بسیاری چیزا از چشمای بشر پنهانه چون که اگه بشر همه چیزو بدونه دیگه آرامش و آسایش نخواهد داشت. دانش شادمانی و نابود میکنه. پس به دقت فکر کن که چی کار می مگر نروزی پشیمون میشی. حالا اگر نمیخوای به پندم توجه کنی، پس رازهای شبو به تو خواهم آموخت. فقط بدون که برای دستیابی به این رازها شجاعت معمولی کافی نیست و باید قدرت تحمل درک اونا رو داشته باشی. جادوگر پیر نگاهی به مرد جوون انداخت. جوان سرش رو داد و جادوگر در ادامه گفت فردا شب باید به جایی بری که هر هفت سال بار پادشاه مارا جشن با شکوهی برپا میکنه کنه در برابرش کاسه ای زرین پر از شیر بز قرار داره اگه بتونی این نونو تو ظرف شیر فرو کنی یا اونو پیش از اون که به گریزی بخوری به تموم رازای شب که از چشم دیگر آدمیان پنهانه پی خواهی بود از بخت خوبت جشن بزرگ پادشاه ما را امسال برگزار میشه وگرنه مجبور بودی هفت ساله دیگه صبر کنی تو این کار باید سریع و شجاع باشی تا به درد سر نیفتی. مرد جوان از جادوگر به خاطر راهنمایی‌هاش تشکر کرد اون محکم و استوار به راه افتاد و تصمیم گرفت به هدفش دست یابه حتی اگه تو این راه جونشو از دست بده وقتی شب شد دنبال بیشزاری وسیع و خروت گشت. جایی که پادشاه مارا جشن اونجا برپا می با چشمای باز مشتاقانه به هر طرف نگاه کرد. اما چیزی ندید به جز تعداد زیادی تپه های کچیک که آروم زیر پرتوه محتاب لمیده بودن. مدتی پشت بوته این نشست. نیمه شب نزدیک بود که ناگهان درست وسط بیشزار سوسوی درخشان دید. انگار ستاره ای بر فراز تپه کوچیک می درخشید. همون لحظه تمام تپه ها تکون خوردن و از درون هر کدوم صدها مار بیرون خزیدن و به سوی روشنایی و جایی که می دونستن پادشاهشون اونجاس خزیدن. اونا خودشونو به تپهی که پادشاه اونجا اقامت داشت رسوندن. اون تپه وسیع و بلندتر از بقیه تپه ها بود و نوری بر فرازش به همه جا روشنایی می داد. مارا یک به یک جمع شدن و حلقه زنون به انتظار نشستم. پیشفیش و سر و صدای زیادی که از اجتماع ما را برخواسته بود، جوونو به خود آورد. اما اون جرأت نمیکرد قدمی به جلو برداره. سر جاش میخکوب شده بود و همه چیزو با چشمای باز تماشا می کرد. سر انجام دل و جرعتی یافت و به آرومی، قدم به قدم به صحنه نزدیک شد اون چه می دید بسیار هراسنگیز بود و چهار ستون بدن آدم رو می لرزند چونان سحنه هایی نمی شد حتی تو خواب دید هزاران مار بزرگ و کوچیک و رنگ رنگ ردیف به ردیف دور مار بزرگ حلقه زده بودن سلطان مارا اندامی بزرگ همچون ستون داشت بر سرش تاجی زرین بود که از اون روشنایی تراوش میکرد. صدای فیشویش و زبرون درازیش چهار ستون بدن مرد جوونو به لرزه انداخت. به طوری که احساس میکرد داره قالب توهی میکنه. ناگهان چشمش به کاسهی طلایی افتاد که در برابر سلطان مارا بود. اون متوجه شد اگه از فرصت به دست اومده به موقع استفاده نکنه هرگز به نتیجه نمیرسه. پس با ازمی راسخ و خونه به جوش اومده تو رکاش پا به جلو گذاشت. عجب فیشویش و سرسدایی تمام اون پزا رو پوشنده بود. هزاران سر مار به عقب برگشته و زبونای بیرون جهیدشون نشون میداد که برای نیش زدن به تازه وارد گستاخ آماده بودن. اما از خوش اقبالی بدناشون اونقدر به هم چسبیده بود، که نمیتونستن تونستن به راحتی خود رو به جلو بکشوند. جوان به سرعت برق تکه این نون در رو و اون تو کاسه زد و در دهان گذاشت. سپس مثل آهو، انگار چندین سگ تازی دنبالش کرده باشن، از اونجا گریخت. مارا سر در پیش گذاشتن و اون صدای فیشفیش زبونشون و پشت سر خود میشنید سرانجام از نفس افتاد و خود رو بر زمین انداخت و به مردن زد. در حالی که دراز کش افتاده بود، رویاهای هراسانگیزی اونو تو چنگال خود گرفتن. در خواب دید که سلطان مارا با تاج آتشین خود اونو گرفته و استخوناش رو در هم میشکنه. با جیغی بلند از جا پرید و آماده نبرد با دشمن شد. اما با تابش پرتو خورشید به سرش از خواب برخاست و تازه فهمید که خواب می دیده چشماشو مالید و به اطراف نگاهی انداخت اما نشونی از دشمن شب گذشته ندید حتی از چمنزار نیز بسیار دور افتاده بود اما فرار از دست مارا و نوشیدن شیر جادوی بز رویا نبود همین که احساس کرد حالش از هر نظر خوبه از شادی فریاد کشید و از اینکه میدید سالم و تندرست از اون همه خطر نجات یافته بسیار خوشحال بود پس از رفع خستگی و رهایی از اون شب هراس تا نیم روز دراز کشید و استراحت کرد تصمیم گرفت که همون شب به جنگل بره تا ببینه شیر بوز واقعا چه تأثیری داره و آیا میتونه اونا از رازهای درون تاریکی آگاه سازه؟ تو جنگل دلش روشن شد و پرده تردیدها کنار رفت. چیزایی رو دید که چشمای میرای انسانها نمیتونستن ببینن. پای درخت سر سراپرده های زرین با پرچمای نقره ای به پا بود که زیر محتاب برق می میزدن. تو این فکر بود که چرا اونجا سر سراپرده زدم؟ و همون موقع میونه درخت و سر و صدایی شنید. گوی ناگهان باد از جا کنده شده. بعد اطرافش دوشیزگانی زیبا دید که از میان درختا در اون شب محتابی به سوی سر و پرده های خود می حوریای هوریای جنگلی و دخترای مادر زمین که هر شب برای پایکوبی به جنگل می اومدن، اونجا گرد اومده بودن. مرد جوون که از پناهگاه خود همه و تماشا میکرد آرزو کرد که ای کاش صد چشم داشت چون که دو چشم برای دیدن اون همه زیبایی کافی نبود. جشن و پای تا پگاه طول کشید. بعد به نظر رسید که هجابی ای بر اونجا کشیده شده چون که همه چیز ناپدید شد. مرد جوون تا بالا آمدن خورشید هم اونجا موند. بعد به خونه بازگشت احساس میکرد که روز پایانی نداره دقیقه ها رو میشمرد تا شب از راه برسه و اون دوباره به جنگل بازگرده هنگامی که شب به اونجا بازگشت هیچ چیز ندید روزها و شبها درباره اونچه دیده بود فکر میکرد و به چیز دیگه ای تو این جهان پهنابر نمی اندیشید. برای دیدن دوباره اون همه زیبایی اونقدر حسرت خورد تا سرانجام بیمار شد اینک مفهوم امیق آخرین سخن جادوگر رو فهمید جادوگر به اون گفته بود ندیدن بزرگترین نعمت بشره سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها حبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه بسههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده،